یاری آموزدا خدمت بینندگان عزیز روز بخیر عرض می و تبریک سال نو امیدوارم که با همازوری سال بسیار خوبی رو در پیش داشته باشیم در این قسمت از برنامه با موبت کامران جمشیدی از پایگزاران انجمن جهانی زرتشتیان و انجمن زرتشتیان سوئد در خدمت شما هستیم به امید آنکه در این گفتگو به جمبندی بسیار خوبی در زمینه جامعه بهتینان و نوزرتشتیان و در کل جامعه زرتشتیان برسیم پرسش های مختلفی مطرح میشه در مورد مسائل روز که جای آن داشت رو که با موبهد بزرگوار درمیون بگذاریم در ابتدا معرفی میکنم از موبهد جمشیدی ایشان سالیان سال هستند که در سال زندگی میکنن و از همازوران جامعه زرتشتی هستند و در واقع میتونیم بگیم که از فعالان این جامعه هستند در برون مرز و تاکنون فعالیت های مختلفی رو در زمینه همازوری نو زرتشتیان با زرتشتیان و گسترش آین بهی در جوامع مختلف بشری انجام دادن روز شما به خیلی مو به جان با می‌داییم که روز خوبی رو داشته باشید با و سال نو رو بر شما تبریک و تحلیت میدیم روز شب شما خوش اینجا روز است اینجا شب است. <تصفيق> هیچ فرقی نداره خوشباب زمان و نخواستیم اینکه من هم نوروز رو به شما و همه شنوندگان گرامی شادباش باش میگم و فراستن سال نورو و درود می‌فرستن به روان و فاربهر همه مردان و زنان نیک و پارسای گیتی گفته های ما از کیومرس وسیامک و سیاهش و, سیاه و هو شنگ و جمشید و فرانک و فریدون و آرش و رستم و همه این گذشتگان ما تا به خود اشروزرتوش اسپنتمان دغدو، حبوبی فرزندان و کوتاه سخن از گذشته تا به امروز و حتی تا به آینده تمام کسانی که نیک اندیشیدند نیک گفتند نیک ورزیدند و در راه راستی و نیکی و همچنین فر و فرهنگ ایران زمین و ایران شهر، کوشیدند و گاه نیز جا نفشندند تا هم صورسان یا سیوشانس باشند و هم زندگی رو و بالندگی رو دوام باشند. به همه آنها درود میفرستم و روان و فربحر اونها رو می تا به امروز که در کنار هم نشستیم و نوروزی دیگر رو با هم جشن می و امیدواریم که سال خوبی برای همهمون در تمام جهان همه به و همه مردمان نیکو های گیتی باشه اونایی هم که نیکو پارسا نیستند بشهند راست میگم خدا دوست شما هستم خواهش من بسیار خوشحالم که دقیقاً شما هستیم به جان همیشه پرسش اول ما از همینجا آغاز میشه نوروز و فلسفه نوزایی آفاینش خب من که میدونید حالا من چندین سالی از هم که در امریکا هستم و وقتی که در اینجا صحبت میشه اکثر امریکایی یا اکثر مخصم اروپاییان با نوروز آشنا هستند و از نوروز به نیکی یاد میکنن این نوروز و این نو شدن و این نوزایی دنیا و این نوزایی طبیعت یه شور و شوق خاصی رو در انسان میدمه و باعث میشه که آدم به سمت نو شدن و همون فرشگردی که ما در داریم پیش بره میخاستم از اینجا شروع کنیم که به نظر شما جهان بینی نوروز و فلسفه نوروز چیه و در گاهان و در متون اوستایی چه تأکیدی بر آن شده بعد بله نخواستین که بگم خیلی جالبه که هرچه که زمان میگذره هر سال میبینیم که نوروز بیشتر و بیشتر و بیشتر خودش رو نشون میده و در کشورهای گوناگون دنیا خب یکی از برحال دلالشم بودن ما ایرانی ها و دیگر مردمی که نوروز رو گرامی می دارن در کشورهای گوناگون هست و به ویژه ایرانی ها حالا گذشته از اینکه تمام سرانه کشورهای گوناگون دنیا نوروز رو آگاش و این نشان از به راستی بزرگی و و ریشه دار بودن و استوار بودن این جشن است به خاطری که ریشه هاش بسیار کهن این درخت بسیار باوروبر زیاد داره حالا اگه به ریشه هاش خود رو بخوایم برگردیم ریشه هاش به درازای تاریخ به درازای تاریخ انسان و نخستین مردمان و نخستین انسان ها میرسه حالا به اون نیپدازم اینو بگم که تمام جشت ما و اون گاههایی که ما به در حال جشن می‌گیریم و آن چیزی که امروز برای ما مونده از گذشته به امروز خیلی جالبه که هم اینا به صدا دلیل تاریخی دارند هم دلیل طبیعی دارند و اینها و انسانی حالا همه اینها رو ایرانی، زوغ ایرانی اینها رو, رو هم گذاشته و به هم پیوند داده و این یگانگی رو که در واقع میشه گفتش که اصل بنیادین جهان هست در همه اینها ما میبینم نگه میداریم اگه بخواییم برگردیم به آنچه که اسطوره های ما میگن میشه گفتش که هم به نخستین انسان از دیدگاه شاهنامه که کیومرس باشه یا گهومرده نخستین زن مرده. در واقع خستورایی یا همون بنیاد هستی یا حسین انسان و سپس به ییم و ییمه یا جمشید میرسه درسته. به این گونه کوتاهی برات بگم که اگه از شاهنامه بخوام فقط چند بندی بخونم که در مورد زمان کیومرث میگه که پجروهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان چنین گفت تخت و کلاه که او مرس آورد و او بود شاه چه آمد به برج حمل آفتاب جهان گشت با فر و آوین و آب به تابید از آن سانز برج بره که گیتی جهان گشت از آن یک سره که او شد بر جهان کرد خدای نخستین به کوهن درون ساخت جهان سر و سر بخت و تختش برآمد به کوه پرنگینه پوشید خود با گروه از او اندر آمد همین پرورش که پوشیدنی یعنی نو بود و نو پرش اگر بخوام به زبان دیگه بگم مثلا تاریخ انسان انسان ایرانی که کمابیش باید به ده سال پیش حداقل اون چیزی که میدانیم باز بگردیم و اون زمانی بودش که ایرانی جای نشین میشه، جایگزین میشه از دور رفتن و چرخیدن دست بربیدار یه جا نشین میشه که به همه هم کیومرس به گونه برمیگرده، هم به جمشید برمیگرده. برای نقش نخستین جایی که ما در اسطوره ها از نو شدن و از آفتاب به برج بر آمدن می بینیم که در واقع همون نخست آغاز فروردین باشه حالا می آیم از اینکه بعد از به اصطلاح این انسان سیامک فرزندش چه شد با اهلی منووت هوشنگ میاد و این سازندگی رو در واقع ادامه میده به شکل‌های مختلف و تا اینکه نوبت به جمشید میرسه جمشید به گفته ای 700 سال به گفته ای 1000 سال دوران جمشیدی است که خب باز می‌دونیم این نمادین هست دیگه سمبولیکه. دوست. و یه دوران درازیه خیلی جالب هست یه بخشایش یک در خب شاهنامه اومده ولی یه جاهایی دیر از شاهنامه نیست که ما از کتاب‌های گذشتگان خودمون نوشته‌های اونها در وندیداد پیدا می‌کنین یه بخش‌هایی از آنچه که در دوران جمشیدی روی داد یه چند تا چیز جالب هست که با نوروس هم ارتباط داره من به طور فشرته بگم که جمشید از سوی یزدان او به هر حال به گونهی بهش آگاهی میرستی که زمستان سختی در راست و خب بسیاری از جانداران آفریدگان میتونن از بین برن و به یک جایی رو آماده کنه یک جایی رو بسازه تا به گونه این نژاد اون چیزهایی که آفریدگانی که وجود داشتن بتونن از سرمایی که کشنده خواهد بود نگاهداری بشن که این در واقع این داستان داستان اصلی یا پروتو که بعد در <تصفح> دیگر به صورت داستان نوت درونه اه خب اه برون اساس جمشید میاد یه نامی هم اومده به نام ور جمع کرد یا وره جمع یا آن شهر جمشید ساخته که حتی براش بسیار جزیات هم آمده روشه بوده چهار پری بوده و مثل هر, هر پرش هم هیچ تا شاخه داشته و که در واقع همون کلیب های نخستین رو از این ور جمع کرد ما مییابیم و این شماره هفتاد و دو هم باز از همونجا میاد که چرا هفتاد و دو بوده در فرهنگ ما جای به سواب داره و روی جالبیش اینه که بعد میگه که از هر نژادی از انسان گرفته تا جانوران و گیاهان بهترین ها رو دستشین میکنند برای که اون بهترین ها رو نگفت و بعد اینا خوب بیرند در اونجا حالا دیگه از توصیفاتی که چگونه بود اینا تا زمانی که این سرما میاد و آرام آرام میره حالا چقدر این زمان به درازا کشیده دقیقا نمیدانم شاید همون سالهای زیادی که در دوران جمشیدی سخنش هست و پس از این که این سرما شروع میکنه پس رفت گردن و دوباره زندگی در واقع شروع میکنه روی کره زمین دوباره جا میگرفتن و به گناه دوباره چهار فست میاد میشه گفتش که زندگی دوباره آفریده میشه از نوع آفریده میشه و این در واقع مهمترین رویدادی بودش که برای انسان اون موقع یا انسان و تمامی دامهایی که وجود داشته بودن در واقع بوده و جشن در واقع زاگش دوباره زندگی و روی زمین از اونجا آغاز میشه پس باز اینجا به روز نو و زندگی نو و نوروز برمیگرده این دلیل طبیعیش میتونه باشه که به نظر من روی داده و بسیار هم درسته و بعد برمیگردیم به داستان خود جمشید که چه کرد؟ جمشید خیلی چیزها رو ساخت در واقع در زندگی انسان اون موقع پیشرفت خیلی خوبی به وجود اومد و این زندگی بسیار خوبی برای مردم اون موقع به وجود اومد که با حال توصیفات نمادینی که هست حتی مرگ هم دور از انسان و در واقع اون بهشت روی زمین در زمان جمشید به وجود اومد که چون خرشید تابان میان هوا نشسته بر اون شاف جهان انجمن شد بران تخت او شگفتی فرو منده از بخت به جمشید بر گوپا رفشاندند روز را روز نو خواندند سر سال نو هرمز فروردین برا از رنج روی زمین پزرگان به شادی بیا راستن. می و جان و خواستند چنین جشن فرر خزان روزگار به ما از آن خسرگان یادگار در واقع اون روزی که در واقع بهشتش رو ما حال بگیم تکمیل کرد بر روی زمین جشن گرفت و بر تخت است و اون روز رو نوروز گفتن پس ببینیم که نوروز هم با زایش دوباره زندگی بر روی کره زمین همراست و هم با تکمیل یک زندگی خوب و ساختن بهش بر روی زمین که جمشید نمادش است این بر می‌گرده دیگه به تاریخ رو که از اون به بعد هم دیگه این نوروز همچنان با ما بوده چنین درخت کوهنساری که چنین ریشه داره خیلی سعی کردن در طول تاریخ به این درخت یک فوتی بکنن شاید بتونن بندازنش ولی این چیزا نه تنها کارگرد نیست برکه جان دوباره رویده می رویه همیشه و امروز هم می بینیم باز این داره درخت هی پروبال مشتری میگیره و چقدر زیبا چرا که نه بگذاریم یک چیز خوب و زیبای شادی آفرین و جشن ساز برای همه مردم جهان باشد و هیچ ربطی هم به دین ویژه و نمیدونم فلسفه ابته فلسفه که تو خودش هست ولی این انسانی است این مردمی است این دامی است این برای طبیعت است برای همه جانداران و روی زمین این ده. به حال تونستم از ریشه هاش خیلی عالی <تصفيق> بود موبه جان دقیقا من همین قضیه هم میخواستم با شما درمیون بذارم که ما در طول تاریخ ایران بخصم در دوره تاریخ ایران بر از اسلام شاهد تهاجم های مغل و تاتار و افغان و اقوام بیگانه به ایران بودیم ولی آنچه که مانده و به ما رسیده در واقع این آینهای نیک ما بوده، همین نوروز ما بوده، جشن مرگان ما بوده، جشن صده ما بوده که هنوزم که هنوز ما داریم پاس میداریم و به افتخار اون هستش که شاید به افتخار این آین های کوهنمون هستش که ما زنده ایم و تا الان تونستیم فرهنگ نیک خودمون رو در دنیا به اثبات برسونیم در سازمان ملل در برها کنشهای مختلف جهانی که برگزار میشه در واقع بخوایم این نشون بدیم و این به نظر شما از کجا نشأت می‌گیره میگیره این بنمایه ای حسیل ایرانی؟ آه... یک بار دیگه پرسش رو بگو دقیقا منظور چیه که بنمایه ایرانی از کجا نشد؟ دقیقا منظورم این است که به حال ما آینهای مختلفی داریم مثل نوروز و جشن ها و جشن‌ها ها از کجا میاد یعنی؟ نه نه منظورم اینی که این یه بنمایه ریشه‌ای میخواد حالا شما در نوروز و فلسفه نوروز صحبت کنین که منصوب است به جمشید، شا. حالا ما جشن سردار می‌گیم منصوب است به اوشنگشاه پیشدادی، به هر حال هر جشنی رو به نوعی ما منصوب میکنیم به یه شاه باستانی خودمون. حالا یه دوره پیشدادی و دوره کیانی که جنبه اسطوره‌ای داره. ما در تاریخ می‌دونیم اینا بخش اسطوره‌ای هست و بخش تاریخی هست که از دوره ماتها شروع میشه. این بخش اسطوره‌ای تاریخ هستش که همچنان مورد بحث پژوهشگران هستش و پژوهشگران در موردش بحث میکنن که چند درصدش واقعی هست چند درصدش خیالی چون یه مدار اسطوره رو با افسانه حالا اونو وارد واژگان نمیخوایم بشیم مغلطه میکنن نظر ام. شما چیه که به نظر شما این بونمایا چند درصدش واقعی هست چند درصدش خیالی و این به حال از, از یک فرهنگی از یک بونمایه‌ای میاد همجوری جوری اولا اول اینو بگم که استوره اصلا حالا واژه هیستوری که خودش تاریخ هم باشه از اینجا میاد استوره شاید بتونیم بگیم افسانه هست اما به راستی میتوانم گفت که استوره فلسفه بوده برای مردم اون زمان یعنی شاید به اون شکلی که آمده به درست و همون شکل روی نداده باشه اه، اما اه، یک گونه ای از آن بوده یک گونی در اونجا هست ببینید مردم اون زمان آرزوها و امیدها و به سرا اون ارزش هایی که داشتند به اسطوره ها باستاق میدادن و بعد از اون اسطوره ها نیرون گرفتن که امروز هم همین جوریه خب جالبش هم اینه وقتی ما یه خود درست بینگریم میبینیم که بعد از گذشت این همه سال چندین هزار سال با شاید آنم اینو داشت فکر نکنه ولی باورها به طور کلی این میره تو سیستم باورها و باورها هر باوری باشه حتی اگه به نظر آدم مسخره بیاد اگر به نظر آدم تو خوری ردجه بیاد خرافی بیا که هست ولی باورها رو انسان نرش به خاطر همینه که میگیم و من میگم که بله زندگی به خودی خود اگر بخوایم بگیم تعریف نداره زندگی زندگیست. است هست ما هم باش هستیم میایم میریم، این ما هستیم که میان روز زندگی تعریف میزنیم، این تعریف های ماست که باز به خودمون برمیگرده اصطلاحاً یه چیزیه به خاطر همین ارزش و در واقع اهمیت اینکه چه باوری رو ما داریم در سرنوشت خود ما و در صدا جایگاه زندگی و به تمام زمینی که همون روش تأثیر و هنایش داره بنابراین هر چی باور سازنده تر، هرچی باور بهتر و نیکوتر بنابراین زندگی ما هم روی این زمین بهتر میشه خب وقتی که نگاه می‌کنیم به استوره ها مون، یکی یکی اگه بخوایم واقعا از همش بگذریم و از هر کدوم ببینیم چه ارزشها و چه منهای بیاد بیرون بیار بسیار جالب است و بسیاری از این‌ها هم شاید در نگاه اول آدم نتونه ببینه خب خیلی از حالا ما شاهنامه رو داریم نگاه کنیم، ولی خب متون دیگه هم هستن چیزهای دیگه هم هستن شاهنامه هم حتی اگه ما نگاه کنیم به عنوان یکی از بنهای در واقع ازش یه یسری چیزها رو ما میگیریم باید به درستی بتونیم بخونیم از گاهی وقتا از میان سطور باید بخونیم و دقیقا همون که نگاه میکنیم همون چیز نیست مثاله از طبیعت و زندگی طبیعی انسان گرفته تا زندگی تاریخی انسان تا زندگی فرهنگی و باوری انسان گرفته در فرهنگ ایران زمین وقتی من میگم فرهنگ ایران زمین یعنی از به حال معروف آینهای های یا گرفته یا پیش از زرتشت اگه بخواییم بگیم تا خودش رو زرتشت رو باید از او بسیاری چیزهای مشترک وجود داره که این اشتراکات این زمینه های فرهنگ ما رو میسازن از, از ایزدان گوناگون حتی میخوام می بگم خدایان گوناگون ایرانی از مهر و الهیتای اطامنباد گرفته، از رام و بهرام و خدایان باستانی ایران گرفته تا جایی که اینا در اهورامزا جمع میشن و تبلور پیدا میکنند و تا به پس از اون، در واقع دین بهی، دین زرتشتی، دین بهی از گذشته بوده دی بهی از عشوزرتش آغاز نمیشه بوده عشوزرتش یک میتونم بگم یک ویراستار و یک درست کننده دوباره فرهنگ ایران بوده از اون مهر مهرآینی میتراییز نیست که خیلی اون رو اشتباه بگیرن با هم دیگه آره. حال اینا زمینهاش در فرهنگ ما وجود داشته و داره و یکی از خود قرمز یعنی اون چیزی که همینا رو به هم وصل میکنه داستان جشن است و داستان شادی است که این خودش اگه بخوایم در مورد در برفه صفحه جشن با هم گپ بزنیم خیلی باستر میشه این چیزی که من میخوام بگم دقیقا. حالا همین منم هم به نوعی میخوام کلیتر صحبت کنیم مو به این جان حالا مثلا ما در مورد چهارشنبه سوری داریم فلسفه چهارشنبه سوری داره که ما در خود زرتشتیان در روز آخر سال یعنی حالا به بنوئی می‌گیم همین 29 اسفند آتش افروزی بر بام می‌کنیم. حالا اون چیزی که ما مثلا در سنت خودمون مونده ولی از اون مثلا حالا این بعداً از طول تاریخ شده به چهارشنبه سوری حالا باعث تقویم یا هر چیزی شیفت پیدا کرده به روز سهشنبه و این دیگه به عنوان چهارشنبه سوری مونده. و بعد بس. این متأسفانه الان حالا در خبرام شما حتما شنیدید برخی روحانیون شیعه عنوان میکنن که این چهارشنبه سوری به نوعی منصوب است به ما و درست نیست برگزار کردن و حالا ما رو متهم میکنم به آتش پرستی و خرافه پرستی و این چیزا و این یه مقدار شبه ایجاد میکنه در جامعه اینو من میخواستم باز بکنیم یه مقدار که به نظر شما این حالا میشه گفت تلقیط تاریخی به نوعی شاید چون ما های ما مختلف مثلا در رفته در تقویم پارسیان میدیم جشن نوروز ما رفته وارد ماه آگست شده و دیگه در آگست مونده و پارسیان در هر سال در آگست نوروز رو برگزار میکنه در حالی که ما در تقویم تقویم اصلی برگزار میکنیم یعنی همچین تغییرات تاریخی حالا به دلایل مختلف صورت گرفته بز. نظر شما در این رابطه چیه و به نظر شما چه پاسخ صحیحی میشه در مورد فلسفه چهارشنب داد خب ببینید نخواست اینو بگم که یک پدیدهی که وجود داره من یه پدیده من به صورت یک گونه قانونمندی هم گاهی هست که دوتا گروه گوناگون اندیشهای فکری باوری اگر به قول معروف درست نباشن، حالا میخوام بگیم وقتی که همدیگه رو میخوان به اصطلاح یکی دیگه رو برانه و بیاد جای اون رو بگیره، باورهای اون رو همشه خرافی مینامه. <تصال> <تصال> <تصال> این هست. حالا تو هر چی یه یه جایی رو پیدا میکنم که ببینید این خرافیه مثل مسیحیت و یهود که مثلا مسیحیت و از یهود اومد و بخی از آین یهودی رو قبول ندرد اگه بخوایم بگیم که آنچه که امروز هست و آنچه که در کشور ما امروز جایگاه داره و رواج داره اگر بخواییم دنبال خرافات بگیرید سر تا تایشمنن نوت درصد شو میتونید خرافات از توش بیرون خرافات راستین باید بخوایم مثلش رو بذاریم یا به گفته ای درو نام های گناهگونی شده خب این یه داستانه یه داستان دیگه هم خب این برای ما تازگی نداره راستش که 1400 و هندی سال 1300 هندی ساله که این داستان با ایرانی بوده حالا امروز به نام ما زرتشتی باقی مونده که یک به خاطر در واقع ناآگاه بودن از اون باورها و اندیشههای زیر در واقع ایرانیان بوده خب رو می اینا میان رو بنا رو می‌دیدن و اینا اومدن آتیش درست کردن و دورش می‌چرخیدن یا میشینند یعنی یایش می‌کردن هرچی هست خب دیدگاه خودشون حالا ازشون میذاشتن خرافات بدونه که بفهمند که دلیل اون چی بوده حتی با اینکه امروز میدانند ولی حالا دیدگاه دیگری از جایگاه دیگری میتازند به این مسئله که دیگه همه می‌دونیم و دیگه ایران می‌دونیم که این اینا سودی نداره برای آن کسانی که شوربختانه و بیخود میخوام بگم دشمن فرهنگی ولن چرا؟ یه فرهنگی که میخواد سازنده باشه میخواد شادی و نیکی و راستی و درستی و خرد و داد رو در جهان گسترش بده چرا باید باش؟ با قول مخالفت مخالف فتف یا کرد اون دیگه بستگی داره به اوناها که اون دوستان سوداش سودهشون رو در کجا میبینند یا از اون که بگذاریم حالا، مثل به سوری دیگه اینقدر گفته شده این روزها دیگه شاید گفتن من دوباره زیادی باشه اما آنچه که میدانیم، جشنهای سوری که ما داشتیم، جشنهای آتش خو جشنهای گوناگونی داشتن که توش با آتش و نور مربوط میشه خب، جشن سوری هم یکی از اونها حالا در این روزهای پایان سال که پور هم گفتید و بر اساس باورهای پدررانمون پیش اون ده روز پایان سال فراورهایی در گذشتگان و به بازماندگان ماندگان به سراسر میزدند و خب میخواستند که ببینن اونها در این در واقع در این پیشبرد عشا و راستی در جهان، تا به گفته بقی دلیل نبنده که ای دارد چه میکنند و حالا اب که تندرستیشون رو ببینن شادهشون رو ببینن همین چیزا و از اون رو خب مردم با این باغرها میمودند و, و شروع میکردن به خانه تکانی و نو کردن و تازه کردن و دلها رو از کینه ها راستند و خب حالا همین جاشو نگاه کنید حالا اسمشو بذارید اونا یکی بگه خرافا یه خرافات یه باعث بشه من به شما مهربان بشم دل ها ما کینه بزودایم یعنی کینه رو از دل در واقع و همه چی رو ببین چشم خوبی و نیکی ببینم حالا این چه بدی داره حالا پس چند تا روایت هست دیگه در داستانی که کی در واقع ما آتیش رو شنیدیم یکی اون ما اون ده روزو اون موقع میگفتن پروردگام و فرودو, فرودو این چیزی که امروز ما 19 فروردین میگیریم بلو. در واقع اون جشن فروردگان راستین اون موقع بوده دو تا پنجه داشتیم این حالا چرا پدران ما این پنج براشون خیلی مهم بوده منم نمیتونم بگم از یک تا هفت هر کدوم بگی یه جایگاهی داشته شد هم به خاطر پنج انگشت چرمون می‌دیدین پنج از پنج گاهانمون، گاونمون گرفته تا پنج دیگه تمام این جشن تا پنج روزه بود درسته گهنبارها همه پنج روزه بلوده. آره، پس ما یه ده روز آخر رو به درگذشتگان و به گذشتگان و به سالی که گذشت در واقع ویژگی میدادیم پنج روز اول پنجه کوچک می‌گفتیم و می‌گیم. پنج روز دومش هم که در واقع روزهای، به قول معروف، اون پنج روز پنجه وقت یا بهیزک یا دیده شده، حالا اسمان گناگونه دارن که بر اساس گاهنامه ما دیگه همه امیدوارم بدونم که سی روز در ماه داشته و پنج روزم که اضافه میاد اون پنج روز به نام گاهان از روز نام گذاری کردند و که اون آخرین گاهان بار رو گاهانبار هم همس پت رو در اون پنج روز آخر میدهدن خب بر اساس آن چیزی که ما روایت که به رسیده یکی اینکه در آغاز پنجه کوچکی آتش یک شاید روشن میشه در واقع میشه گفتش که آغاز اون جشن های یکی هم در آغاز پنجه بزرگ که گاهانبار شروع میشده و پایان گاهانبار که جشن نوروز میشده که در واقع به پیشواز میرفتیم یعنی بدرقه میکردیم که فراغرها به جایگاه خودشون بازگردن خب این آتش ها در واقع افروخته میشده آنچی که ظاهرا هست اینه که بعد از هر حال وجوم و چیزهایی که در ایران رویداد بعد از 120 200 سال که دوباره ایرانی‌ها های خود به خود آمدیم و دوباره شروع کردیم رو گرفتن میگویند خب نخواستیم جشنهایی که گرفته شد یا آتشی که روشن شد برای اون جشنها باز برای اینکه با برخورد اینهایی که آمدن در خانه ما نشسته بودند روبرو نشه مثل خیلی هر که ما به نام اونها زدیم برای که از بین نرن، این نم گفتن خب حالا چون فهمیده بودن که برخی از آزیان چهار شنبه رو روز نسی میدانند و بد شگون حالا اتفاقا اون شبی که آتش افروخته میشده شب سه شنبه بوده یا اینا رو انداختن به شب سه برایی برای که بگن ما به صدا بد شگونی رو میخوایم از بین ببریم اینو منم نمیدانم ولی دلیل وجودی یعنی به وجود اومده چهار شنبه سوری از اونجاست. از صورت که خب ما تو گاهنامه گواهنامه‌هامون روزای هفته رو به این نام که نداشتیم که بخوام بگیم چاشن سودی این از اونجا باقی مونده و خب این مونده اشکالی هم نداره حالا یه روز ممکنه هی بگن که آقا جان این بده اون خوب خرافیه. اصلا داستان وقتی میره توی آیین‌ها خب تو سنت‌ها آیین یه خود پیشیده میشه داستان یعنی اینا وقتی رابش فکر میکنه که حالا یه هر که آ آن... قرمز نمیدونم خوب نیست من هم epsilon هر شی دم و لام میگم نه سبزه نذاریم چون نمیدونم این دانه ها رو ببریم مثلا بگی بیکارین به جای سبزه فلام بزنید خب درخت چه بذاریم آقا فلام اینا پرسش میشه آقا چی درسته چی غلطه بیسکوچکش که به راستی یک جواب یک پاسخ 100 درصد درست, درست براش نمیشد از یک سو میگیم بابا خیلی خوب این آین مونده بهش خوب گرفت این مردم با اون اصلا بشن فکر فیک نمیکنه که دلیلش چیه؟ مثلا اون شادیه هست و اون جنبوشو چی که در جامعه میفته. حالا میان میگم برخی میگن نه از روی آتش نپرید گناهه. خب دور آتش بیستی، برخی میگن که نه اشکال نداره. میشه اینا رو یکی وارد شد هر کی خودش باگه آقا این درسته این غلطه. منم پاسخ اصوخه صد درصدی برش ندارم بجز با که باز به شخص خودم برمیگرده خب من می کنم که برای نمونه اگر خب ماهی میذاری خب ماهی خوبه یک بخشی از آفرینش زنده است که اون روه مطاقی ماهی بیچره رو نکشش محیطش چوری جوری بساز که تا سالها زندگی کنه بعد نتونستی نگرش داری ببر یه جایی رهاش کن جایگاهی که به زندگی کنه برای نمونه یا این که اگر به جایی رسیدیم که امروزه مثلا و خب داریم میبینیم در زمین کره زمین آب و هوا داره جابجا جا میشه در ایران زمین خوشکسالی داره زیاد میشه مثل خلی جاهای دیگه خب اگه واقعا میلیونها مردم بخوان بیان مثلا این سبزی رو برفظ میگن خب این روی سفره گذاشتن و بعد به دور ریختن باعث میشه که طبیعت آسیب ببینه میشه اندیشه دیگری براش کرد باید نه اینکه هر کسی بیاد واسخوش یه چیزی بگه قرد یا به هر حال آروم آروم از نظرهای مردمی میاد یه جمع میشه یه روز تحولی به وجود میاد حالا یعنی میخوام بگم اسل رو فراموش نکنیم که اصل ریشهای به وجود اومدن آینها چیست هفت سین بذاریم یا هفتچین بذاریم یا هفتشین بذاریم خب بر میگره به نظر من همه اینا به اون هفت شش یا هفت تا خودمون حالا یکی میاد میگه برای نمونه حالا باز میگم شیر نماد وقوع است اون یکی میاد میگه نه حالا به جای شیر مثلا تخم مرغ میتونه نماد معادله قرارش حالا دو تای شیر اصل کار اون وقوع مننه یا اون اندیشه و بعد باز همه را برمیگرده باز دوباره به اون چرا ما جشن میگیریم و این شادی چه نقشی داره میخاییدم بگم یا میخایم فرصت دیگه ای بدیم ما حتما اطمینان می خوام وارد همین مسیر بشیم و بعد بریم وارد بحث اشا بشیم برای ادامه بدیم ببینید شادی اگه بخوام به زبان خیلی خودمانی و معمولی بگم شادی این نیست که من بیام بی یک روز بشینم و یه می بنوشم و خب چهار تا شوخی هم با هم بکنیم و تموم شه بره البته اونم بخششه چرا که نه اون جایگاه خود داره ولی شادی خیلی خیلی بسیار فرسفهش جرفتره اولا که شادی باید از درون بیاد اون شادی که به راستی آدم یعنی حس میکنه دیگه وقتی میگیم از درون هر کسی خودش باید بیان دیگه شادیت درون یعنی چی یعنی شادی ظاهری نیست این شادی درونی از کجا میاد از این که من مردم انسان در زندگی احساس خوشنودی بکنم شادی از خوشنودی میاد از اوشتا میاد از خرسندی میاد چگونه میشه که من در زندگی خوشنود باشم خوشنود راستین بخیلی چیزی آدم میتونه با جاهای گناهگون بشپذنده. یعنی که من با پیرامونم یک پیوند و آمیزش خوبی داشته باشم. چینه در دلم نباشه. احساسات بد نداشته باشم. جامعه با دیگران خوب باشه. زندگی با زندگی سر سازش داشته باشه. و زندگی با من سر سازش داشته باشه. و و و خب اینه باز. دلال گوناگون داره یعنی چجوری و چراهایی رسیدن به اینجا این شادی شادی واقعی است، شادی درونی است. از انسان و انسانهایی که با هم هستند و شادی اجتماعی رو میسازید این از یک سو و شادی یا جشن در برخی فرهنگهای دیگر که باز هم از اون افتوره هاش نمیاد ایجا بوده که مثلا یک زندگی سختی رو بگذرونن که بعد آخرش یه روز بشینند مثلا استراحت کنند و اون روز روز جشن و شادی در فرهنگ ایرانی اینجوری نبوده. در فرهنگ ایرانی آغاز جشنه است و تمام اون فرایند جشنه برای که آفرینش و آفریدن و ساختن با شادی و با جشن همراه بوده و هست. این نیست که تمام روزها به سختی بگذرونیم و بقیه زندگی برای اون جهنم باشه یه روز مثلا بزنیم بیرون و جشن و شادی کنیم نه این شادی باید در بنوه در روح و روان جامعه باشه جامعه جوان باشه نشاط باشه سازنده باشه جوان فقط مزور سن و سال نیست انسان نبت سالم میتونه دل و جان جوان داشته باشه اینو بشه میگن شادی این فلسفه جشن بوده. حالا برای پدرانمون اینا در حتی خدایان، ایزدان خود هر چیست رو بخواهیم بذاریم هر روز زایش یک خدا بوده، یک ایزد بوده بعدی رو می آفریده از خودش در واقع یک تغییر شکل خواهید دگرگونی یا یک آفرینش، آفرینش نبود، پیدایش اگه از یک فرگشت هر روز فرگشتی بوده از یه شک به یه شکل دیگه. همه هم خوب همه هم سازنده به خاطر همین هر روز جشنی بوده خب اون روزی هم که حالا دیگه نام اون روز ماهگی میشد که جشن بزرگ گرفت این جشن ها همیشگی بوده هر روزه بوده حالا برخی جشن ها به دلایل گوناگون بزرگ شد جامعه, جامعه جامعه در واقع پوینده پویا سرهار و سازنده و پیشبرنده در غیر از جامعه همه شادند و خیرت میاد وسط خیلی چیزای دیگه میاد وسط که حالا دیگه داخل همه نمیشه این شادی است فرصفه, فرصفه جشن است دقیقاً من همین پرسشه داشتم اتفاقا اما یه بحثی که حالا بیشتر در رابطه با جامعه ایران میشه همین بحث شاد بودنه که میگن که حالا مردم افسرده هستن و دپرس هستن و چه کار باید کچه راهکاری باید ارائه داد تا مردم شاد بشن الان جدیدا رو بردن به رسی برنامه تلویزیونی که بتونن مردم شاد بشن در ما اینو خودمون در فرهنگ خودمون داریم شاید این تناوبه ماهانه جشن ها به نوعی بوده شاید این سلسله تداوم شاد بودن و شاد زیستن رو در مردم فرهنگ سازی بکنه من همین پرسش رو از خدمت شما داشتم که چگونه ما میتونیم از بهره از آینهای خودمون فرهنگ بکنیم و بگیم که چجونه میتونیم شاد باشیم چجونه میتونیم شاد ب... در واقع زندگی بکنیم و این راهکارش چی است به نظر شما ببینید یک یک دوگانگی و یک تضادی اگه ما حالا صحبت از جامعه کنونی ایران میکنیم یا در جهان به گفت کلی این دوگانگی این همیستاری یا تضاد این هست که از یک سو دروغ میخواد فرمان برانه و از یک سو میخواد با وانمودگری و تظاهر یک شادی در واقع دروغی موجود کرد خب حالا یک جامعه نمونه، حالا هر جا باشه، ایران باشه، هر جا دیگه باشه شما از یک سو اونهایی که به اصطلاح جامعه رو میچرخانند، حالا بخواهیم بگیم با, با دروغ با تظاهر، با دزدی و به شکلهای مختلف هست از دسترنج اون مردم، از ثروت طبیعی اون مردم میبرند و این در واقع شادی کشی میکنن از یک سو وقتی که من در جامعه ای که امنیت ندارم امنیت اقتصادی و سی... حالا سیاسی شو بگذاریم همه به هم مربوط دیگه فرق نهره بچه گشنه است. از اون وقت میبینم که کلی سروت کردن داره به شکل های دیگه از بین میره حالا از اون وقت بیام مثلا یه برنامه تلویزیون درست کنم که یه بیا بیاد منو بخونم آره خب اون میتونه خوب باشه متا در یک بطن بزرگتر در یک صحنه بزرگتری که همه چی آماده باشه باش اون شادی. اگه نه یه یک تظاهره یک دروغه به هیچ جا نمیرسه شما باید اول مبنای شادی راستین را فراهم کنه که هیچ چی نیست تو را راستی درستی این راستی درستی مثلا یک دین ویژه یا نمیدونم یک چیز مندر آورده نیست این با طبیعت ما سرکار داره. با تمامی هستی ما بر روی این کره خاکی سرکار داره. حالا وقتی که ما می حالا انسان داریم انسانی داریم نگاه میکنم، توی جوامع انسانی، تو هازمانهای یا هم بودگاه های انسانی، مردمی که ما توش هستیم، اون وقت مسئله اخلاقی به میاد، بریم مسئال دیگه به وجود میاد که بر اساس همونه. اگر راستی و درستی، و خرد و داد و مهران که میگیم اینا شعار نیست اگه اینا تو جامعه نباشید نمیتونی شادی وجود بیاری ای این طرف بیا مردم رو بگیریون به شکل‌های مختلف تو بعد بعد وقت حالا حالا چی می‌خوام بگم اون انسانی که به سختی داره روزو کارشو می‌گذاره اونه و آماده‌ی هست از اونور بگیریونش از اونورم حالا به خاطر همینه که مردم حالا این مملکت یه چهارشنبه به که میشن چگاه میکنن؟ تمام اون گره ها و وقته ها و اون مساله درونشون میان در سر و صدای زیادی و نمیدونم حالا نارنجک و قیده و بهمن حالا نارنجک یعنی چیزهایی که میترک کنه خب بعد میگن که چرا مثلا مهدم شروعش میکنن و دیگران نارد میکنن خب بابا از اونجاست که بقیه روزها رو دارن، بایی سختی میگذارن، یه جایی کشاهاشی پیدا کردن، بیان بریزن بیرون خب یه جامعه بصرا سالم و تندرست، این, این شادی رو در همه روزاش داره و به یک گونه آرامشی تبدیل میشه اگر شما جامعه آروم میخوادید، آرامی رو باید در خوشنودی و شادی اون مردم بکارید و از اونجا بیارید بیرون به خاطر همین این مسائل و این تظاهرات میاد راستی و درستی این پایه به یک انسان و یک همبودگاه و یک زندگی خوب و یک جوان خوبه هیچ راه دیگه یا نداریم دقیقا موبترم همین بحثی که ما در مورد عشقا میگیم میخوام بریم که چگونه میتونیم این اشا رو در زندگی خودمون پایسازی کنیم الان ما همین بحث شاد بودن شاستیستن رو شما عنوان میکنید خب حال هم دیگه شما میگید به آدم انسان در طول روز حالا کار میکنه به سختی های سختیهای های زندگی هست به با این دشواریه زندگی با دست و پنجه نرم بکنه چجوری میتونه از فلسفه اشا بهرمند مند بشه علیرغم اینکه زندگی خودش رو به یه هنجار برسونه بر اساس همون هم بتونه شاد باشه یعنی مشکلات رو بتونه برطرف بکنه با مشکلات کنار بیاد و از اون مشکلات به یه راه سازگاری با دنیای خودش با مردم خودش حالا با اونجایی که زندگی میکنه برسه و مخصوصا الان که ما به یک نوعی یک سری تضادها رو حالا در همه جا میبینیم نه فقط در جامعه ایرانی در کل دنیا میبینیم تضادهای بین نجاتها تضادهای بین سلیغای مختلف و گاهی وقتا میشه که شما میخواید تلاش بکنین تضاد رو برطرف کنین ولی نمیشه به دلایل حالا مسایی که در جامعه هست ما چجوری میتونیم اول این که از بهره بهرمند بشیم و اول خودمون رو شاد بکنیم و دوم که چجوری میتونیم بر دیگران تاثیر بگذاریم خب میتونم چی میگی و این میخوام من بگم که یک انسان است یک من هستم و یک من ها خب پرسش اینجا پیش میاد که میگه خیلی خب شما فکر میکنید که در درون خودت بیایی حالا به از راه های یک باور درست از راه خب اون چیزهایی که ما میگیم از راه نیایش از راه تمرکز اندیشه از راه هایی که حالا یا شاید دین آینه بهت میآموزه یا باورت بت میآموزه یا خودت در زندگی و تجربهش رسیدی به ای بتونی اون آرامش درونی خود رو برقرار کن خب اگر پیرامون تو آرام نباشه یا ببینی که اون, اون چیزی که شما دنبالش هستی اون چیزی که به راستی درستی میگی از دیگران که پیرامونت هستن نمیبینی آیا تو میتونی اون آرامش شما شادی رو داشته باشی اه... میدونم که دشواره میدونم که پاسخ شاید صد درصدی هم نداشته باشه ولی حالا دست کم خودم در زندگی خودم در درون خودم با آزمون زندگی و با تمام چیزهایی که با من بوده به این نترستم که راه دیگری نیست و میشه شما اگه همیشه گفتن و درستم گفتن یعنی که جهان رو اگر بخواید دگرگون کنی اول خود رو بگربون کنی راه دیگه ای هم نداره. یعنی تنها راهش و بهترین راهشم هم همینه. چون اگر شما بتونید درون به خودت رو و خودت رو به اون آرامش برسونی، این آرامش از تو هم به بیرون پراکنده میشه. و روی پیرامونیان تو هم هنایش یا تأثیر داره. و خود به خود آدم های هم به گونهای هم آرامش رو حس میکنند و همون انرژی مثبت رو نفس میکنن حالا باز بستگی داره که آیا اون هموردگاهی که شما درش زندگی میکنی آیا آمادگی اینو داره از گوناگون که بتونه این آرامش افزاینده بشه یا اینکه نه مثلا چیزهای دیگه هم وجود دارد که دارن برابر این وزده این کار میکنن و هی حی... اینو نگرش میدنن نمیتونن گسترده بشن